رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لوت چشم داشتم و یک نظر نکرد سیل سرش که ماز دلش کین به در نبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار که از تیر آه گوش نشینان حذر نکند ماهی و مرغ دوش زفغان من نخفت وان شوخ دیده بین که سر از خواب بر نکرد. میخواستم که میرمشن در قدم چوشم او خود گذر به ما چون نسیم سهر نکرد. جانا کدام سنگ دل بی کفایت است که پیش زخم تیغ تو جان راسه بر نگر کلک زبن بریده ی حافظ در انجمن با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکر